فیلم آقای یوسف نویسنده و کارگردان علی رفیعی تهیه کننده مرتضی متوی بازیگران مهدی هاشمی بله دادا حالا میام دنبالت میبینم خانی توسلی خب یه کلام بگو دوست نداری من آرایش کنم دیگه شاهروخ فرودتنیان خودت برو خونه رو چراغونی کن اینقدرم پوز دخترتونه نگاه آهنگرانی با مریمم حالا دیگه من نمیستم مریم سعادت تو رو خدا نگاه کن این دکتر دست از مهمون بازی بر مو سهیلا رضوی نمیخوام ریخت قیدوازش رو ببینم میخواد رفیقش رو واسطه کنه لیلا بلوکات به خدا دیگه خجالت می کشم دستتون درد نکنه موسیقی علی صمدپور در بچه پنج شیش ساله صورتشو چسمونده به شیشه و داره شکلک در میاره. دست مردی از این طرف شیشه کمی مایه شیشه پاکا میپاشه رو شیشه و با دستمال شروع میکنه به تمیز کردن شیشه دختر با ترس صورتشو عقب میبره حالا مرد صورتشو چسمونده به شیشه و داره شکلک در خانم جوان داره توی اتاق یه پارچه آبی رنگ روی میز خیاتی پهن میکنه <تصفيق> با شنیدن صدای خندهی دختر بچی اونم لبخند میزنه زن داره پارچه رو اتو میزنه دختر جوان دیگی یواش اومد توی اتاق خیاتی و یه لباس بلند قرمزی ساتن شده رو که تن منکم برداشت دختر جوون مقابل آینه بزرگی که اتاق دیگه داره لباس رو مپوشه ماما سارا داره اون نبس خیلی زدی جوون جبودا مپوشه مادر قیچی رو زمین میذاره و با شتاب بلند میشه سارا باما سارا خودم بقید هم میشه چه خودم نبس سارا بایش رو بایش رو ببینم مامان مگه چه سارا بایش رو بایش رو بایش کجا میری؟ این مال مردم هیچ من نمیتونم بودم پس یه داشتن میاد نباشد. الان پاره میشه ها. جواب مردم چیه؟ داشتن مامان تو خود. دارش به. نمی دونی چه غم میاد. نزن بی خود بد میاد. مامان داره خود. دارش به. خود. کجا میری؟ مرتی عالا مشغول تمیز کردن پردهای کرکرییی متوجه ماجرا میشه. میکنم میگم فقط همینه. حوصله ندارم ساله. دیم دفعه. ده کف منو در نیار بر بذار سر جوش دیگه. چقدر بدی آنه مگه چی لباس؟ هیچ چی مال مشتریه میفهمی؟ دختر لباسو به مادر هم میده فکر میکنه کریستیان دیوره ساراد من سطح به دست داره به زن نزدیک میشه تو رو خدا میبینی آقا یوسف کرستیان دیوردی یکیه یه بدبختیه مثل من آقا یوسف سطح رو زمین میزده دختر بچی به آقا یوسف نزدیک شد چیزی نمیخوای آقای یوسف کهی نداری؟ نه خانم زن مشغول خیاتیه میگم دختره چطور خیلی وقت بیخبرم خوبه خوبه میگم این ماده شوینده اصلا زور نداره معلومه ورزشکار قدیمی هستی آقای آقا یوسف همش دنبال زور و قوت میگهدی آقا یوسف داری فوت میکنه به دستش شوختم چی شو؟ مسکه مایه رو اشتباهی ریختم آخ، بچه به اون دست دادی اون مایه اسیدی توشه خیلی می‌سوزه. سوزه در حد نیش زنبور ماشالله از رو هم که نمیری آقا یوسف اون ما. اونماست دستو شما درمید آقا یوسف و دختر بچه سر میز نهار مشغول خوردن پلو خورش قیمند لیوان های و کاس های ماست و میذاره دومیست آقای یوسف داری تحمانده قضاها رو میرسه توی یه نایلون و بشخوابار رو جمع میکنه سارا پشت در اتاق بسته پدرش داره با اون حرف میزنه بله. من فردوها پول دانشگاه مو بدم ندارم آقای یوسف داری این صحنه رو میبینی من چیکار کنن چه میدونن؟ برو از مادرت دگیر همین چه میگی. بالاخره من از دانشگاه میندازم بیرو چند دفعه بهت بگم از بابات پول نخوام. من بر چی دارش سوزن زن میزنم نکنی پس اون چیکار است ؟ چیکار است؟ فکر هست؟ خونه به این شلوقی تو عمرت ندیدی آقا یوسف عوضش پر زندگیه پر زندگی سارا دستشو میکو به روپه هاشو میره بود در رو میبنده شما چی جوری با تو کنار میاد اون اوال فوت مادرش یه ذره سخت بود. کم کم با هم کنار اومدیم الان دیگه یتران شده دمخوار من تو رو خدا یکم این دختر نصیحت کن من؟ شما خیلی دوست داره یوسف خب خب منم دوستش دارم. آقای یوسف جروبرقی به دست میاد تو اتاق سارا ببخشید. نه آقای یوسف من دارم میرم بیان تو غزایم نیستم؟ نه نه من دارم میرم سارا جلو آینه داره صورتش رو پاک میکنه گریه کنی سارا خانم؟ نه آیس یکم دلم گرفته دختر جوانی مثل شما شما که خودتون دختر داری؟ من گریه دخترم رو فقط موقع فوت مادرش دیدم میگه هیچ وقت گریهشو ندید؟ نه شما ندید؟ اونم حتما واسه خودش گریه خودش شده. من بهونه ای برای گری کردن دست دخترم نمیدم. هر کاری بتونم براش کوتاهی نمیکنم. کنم. چی آقای پدرم همه فکر می همینقدر که خورد و خوراک و لباس و پول تو جیب رو تامین کردن همه کار کردهن. دیگه چیکار باید بکنن؟ چه میدونم. بدونم بیست سالگی یعنی چی؟ شما که خودتون عاشق دخترتونین. بعد اینارو خوب بفهمین. از کجا میدونیم عاشق دخترم هم؟ و تو میدونم شما عاشق زنیتونم بودیم مثل این خانسالامت همه چلوهو لو خوشحالم میکنم گیر آقای صفر ها یه کاری آزه این با تو من بکنی چه کاری؟ من موبایلم یه طرفه شده میتونم از تلفن شما یه زنی بزنم معلومه مرسی بیا فقط خودتون باید حرف بزنی من چرا بخیل آقای سف نمید خب به کی باید زنی بزنم ها به علی پسر خانم سلامت میشنسی نشین بابا مامایت میدونن مامانم نمیتونن با چرا تا بابا تا میکنی؟ خب شما میکارتون از اخترتون قایم میکنی خیلی خوب شما را شو صحبت کن بعد اگر خانم سلامت برداشت میرم یه چیزی بگیم به پیچون اینش اگرم علی رزا برداشت گوشه بدین باشه. آقای یوسف لباسای تمیزشو پوشیده و داره لباس کارشو میذاره توی ساکه کوچولوی برزنتی سارا مقداری پول به آقای یوسف میده آقای یوسف خسته نباشی ممنون با من با برم قابل نباشی خدا خفیز پولو ها تو جیبش زیب ساکو میکشه مادر با کمک دختر بچه داره پارچه ای رو که روی بنده هم کرده صاف می دست درد کن آقا یوسف. کاری با من نداری؟ نه دیگه. حتما نفته دیگه بیا. به دخترت هم سلام برسون. من دیگه بیرم. خداحافظ. خداحافظ خدا. خدا سلام. آقای یوسف از پله های سنگی کوچه ای در حالی که چهار تا کسی بزرگ پلاستیکی پر از وسیع دست بشه دار یه زن جوان به یه چادر آبی خوشرنگ در از بازید. سلام بابا یوسف. دوباره که زحمت کشیدین. دستتون دردر کنه. خودم میارم. نه نه نه خودم خورده خورده میبرم. زید نیکو را صدا کنم باش. نیکو. بودو بیارم. نه نبره کنه رود خونه. بودو سرد بیا سلام ارجم تو دختر خودی تو قباغ نشو نماز باش نه مراد دینا سهام تو قمقره میخوره به من نمیده ای نوش جونو میکو آقا جادرس قدی آدم چم بسته آدم موزی از جیبش بیرون میاده اینا ابنامه او کی خریدی آقای یوسف با اداهای مثلا شعبده بازی یه آبنوات چوبی از آستینش بیرون میاره زیپ ساکت چوبی خورد قوس اینا نرم چیه اینا اینا که اینا باد اینا اینا اینا اینا اینا اینا اینا اینا اینا اینا اینا اینا ای ای دوار روی سر آقا یوسف کلای رو که رو سرش بر داره و یه عروسک از توی اون به دختر بچه میده چیدی کم نداری؟ والا دیگه روم نمیشه فقط و خونه از طریق برای خونه شد بیار از چه سر قبل او برچ الان میاره؟ زن جوان میره, پرده. پرده میره نه. زن قبضا رو به آقایی سفری به خودا دیگه خجارت میتشم دستتون درد بکنه پس که چرخ و فلک چرخ و فلک میخوایی؟ ازیاد نکن با بزرگ و خستست اینم چرخ و فلک درستان میگیره و میچرخونه توی یه قهر خونه به تعدادی از آقاییون درند قلیون میکشند. احویسچی براشون چای میذاره رو میزه جببالی. آقا دست شما میاد تو قهوه خونه سر میز آقای جبباری میشینه نایلونی که تهمانده غذاها توشه رو میذاره رو میز. مردی روزنامه به دست به میز اونا نزدیک میشه روزنامه رو میذاره رو میزه رو میزه و میره سلام و علیکم و سلام. نقصد خوبی؟ حتی سین دیر اومدی آقایوسن سلام از پیش نوش میاد آخه اون کم از ستون بین کسا کار نیستش معلومه یه عمری پسر بزرگ کرده پشپندشم باید نوش رو بزرگ کنه بمیرم واسه یه عمری جور میکشه من فقط جور تو رو میکشم قصدت هم میخورم. چی میخوری؟ واقع چایی نگرفتی؟ شام میخواد با دخترش بخوره آره اینم خوراکه امروزه دستتی شده هیچی سلام آقای سه سلام آقا بند خدا این دست رو رهنا ببینه که لو میری رهنا این دست از سرش اون نمایشی شاز کچه مثل یه به حواسش بمنه به دخترت نرمویزه نه بزنم امینت که یه موجودی زیر اون صخف نفس میکشه خدا شو نختی خونه نیست چیجوری نفس میکشه؟ موش که هست لباساش که هست حتی رخشی چه کشت تو سبد گوشی همون که هست او یه که بای من درست میکنه که هست تو فکری به حال تنهایی خودت میکنه بفهم دست دردن احوی چی چای برای آقای یوسف میذاره و یکیف چرمی جم و به آقای یوسف میده و آقای یوسف هم ساک برزنتی که هم بود و به قهده چی میده شب چی کاری؟ خونه؟ به خون وقتی رهنه از تو کوچه پنجری خونه رو ببینم چراغش روشن باشه. شب شده توی یه کوچه یه تاکسی با چراغی روشن توقف میکن خود دو برو خونه رو چراقه نیکن کن؟ پاز دخترتون هست نمی آی بلا اخه میخوام برم یه فکری باله با تنهاییم بکنم <تصفيق> خیلی خیلی آقای جباری رانند تاکسی و آقای یوسف هم کنارشه آقای یوسف داره تاکسی رو باز میکنه و پیاده میشه بازم میم تا تو پا پیش نذاری دخترت جرات نمیکنه بیا طرفت آقای جباری هم از ماشینش پیاده میشه یرزی با اون ننه مثل دیوش من چی میتونم بکنم چیکار به اون داری؟ اونا که به هم نچسبیدن میدن شما ببین دختریت کجایت چیکار میکنه؟ با کیه حالش چطوره؟ اگه اون نخواست منو ببینه چی؟ دخترا بابا دوستن خره به فهنا خودش میاد سراغت اه هی بهونه میاره؟ جباری رفتی تو فکر و کنار ماشینش قدم میزنی اگه میخوای دخترتو ببینی دمی رهنا رو ببین اقا یوسف خوشحال در آپارتمانو باز میکنه کلید برقو میزنه. اپارتمان روشن میشه. رعنا یادداشت شسبونده به رخت آویز چوبی دمه در یادداشتو بر میداری بابایی من دیر میام شام آماده است شام خوشمده ای بابا کیفشو میزه رو اونجا میره سراغ یخچال در یخچال رو از پنجره و پرده به کوچه نگاه میکنه آقای جباری هنوز نرفته جباری آقای یوسف رو که میبینه میره تو ماشین تو سندگی پلاستیک تقنیده قضا دیده میشه جباری حرکت میکنه و میره آقای یوسف داره با تلفن بی سیمی شماره میگیره یه دختره چاقو میگه اسمم پنج دلهه، تافت چوبی توی حیات کور از گلودیان نشسته و با موبایل صحبت می‌کنه. بله. سلام اسمت خوانم؟ من یوسفم. سلام آمو یوسف. چه طوری؟ من یوسف، چطوری؟ من مریمم. حالا دیگه من نمی‌شناسمی. مریم جونتای خوبی؟ یه زن جوان به دختر نزدیک میشه. به دختر اشاره میکنه که گوشی رو به اون بده. مامان توه؟ سلام آقای یوسف. سلام اسمت خانم حالتون خوبه؟ الحمدلله بد نیستم. چه عجب یاد ما کردین؟ ما همیشه یاد شما هستیم. باور که نمی کنم بگین چیزی شده؟ راستش می‌خواستم بگم که این رفیق ما آقای این روزا حال روز خوبی نداره. خب این که چیز جدیدی نیست ببرینش دکتر. بیماریش نمی‌گم. اوضاع روحیش تعریفی نداره اسمت خانم. اون چیزی به من ربطی نداره. دلتنگ دکترش. دخترش جز نفرت چیزی چی از اون بابا به دل نداره. خدا خوش نمیاد اسمت خانم. بذار دخترشو ببینه این برای دختر شما هم خوبه اصلا حرفشم یوسف خواهش میکنم دیگه هم اینجا تدفان نزن بوشی رو زمین میزن چی شده هیچ یعنی چی هیچی چی میگو؟ میگفت, میگفت بابت مریزه. مریزه. بابت همیشه مریض بوده حالاشم مریزه. میخوام ریخت قناصش رو ببینم میخواد رو کنه اسمت خانم بلند میشه و میره آقا یوسف غمگین گوشی تلفن و زمین میذاره میره طرف پنجره پرده رو کنار میزنه و به کوچی نگاه میکنه یه دختر جوان در آپارتمان آقای یوسف رو باز میکنه راناس دختر آقای یوسف آروم میاد تو با احتیاط به یه گوشی نگاه میکنه و لبخند مزنه سیرچو بزنیده اونیزی که دسته زبت ست ریونه زبتو خاموش میکنه میری طرف پدرش بابا اومدی؟ باز شان نخورده خوابیدی؟ منتظر تو بودم ساعت چنده؟ دسته چی شده؟ چی دینی؟ ببینم سی باز از پاشا لباس تو عوض خون شام بخوری پاشا بگه رانا پا میشه و از اتاق مینه بیرون آقا یوسف و رانا توی آشپزخونه دور میز گردی نشستن خب، رو شام میخوا کدوم کار؟ امین کار جاید شاز کوچیکه شازده کوچولو <laughs> شاز کوچولو قرار بین من چند تا از همکارم یکی انتخاب کنم اه نمیدونستم رقیبم داری تا دلت بخواد البته کار یکیشون واقعا خوبه. حالا شانس کوچولو چی هست که اینا برای فرداش میشکنن؟ یه قصه یه خیلی خیلی خوشگل. یه زنشو رو. شانس کوچولو در واقع یه موجود خیلی خوش قلبه که توی سیارش با گل و سرخش زندگی میکنه تمام زندگیشو وقت گل و سرخش کرد یاره به؟ همین؟ نه. گلسر فقط به خودش فکر میکنه تا جایی که شازده کوچولو حسابی خسته و آزرده‌ میشه با همه عشقی که نسار گل سرخش کرده تصمیم میگیره یه روز بزارو بده. تناپا میشی میره کاناپه رو مرتب می‌کنه. اصلا جالب نیست. چرا؟ برای اینکه میذاری میره. چه فکری میکنی بابا؟ من جای رفتن میزاره ولی مطمئنم تو رقیب نداری دختر. کاش کارگردانم مثل تو فکر کنه. اونم مثل من فکر می‌کنه. نکردم مهم نیست چون دیگه نمیخوام تون استودیو کار کنم بابا چرا؟ چون میخوام برای خودم کار کنم میخوام به فکر خودم باشم میخوام قرصاتو خوردی؟ نه رانو قوطی دارو رو میذاره کنار دست آقایی سه اومدی و اومد من یه وقت رفتم باید یادت بره آقا یوسف قوطی دارو رو برمیداره تو نباشی من برای چی باید قرص بخورم اونو میذاره رومیز صدای زنگ موبایل رانا رانا میری طرف کیفش که توی اتاقه کیفو برمکنه الو آره رسیدم <تصفح> چی؟ نه رانا در اتاق میبنده آقای یوسف و نگرانی با اتاق خیره شده روی ورقه های ای که پهن شده آقای جباری کسی پلاستیکی تهمانده غذا رو میذاره و دو تا گربه سیاه میان مشغول خوردن میشن <تصفيق> جباری کبریتی میکیشه و رو روشن میکنه <تصفيق> اون دست میکشه به سر گوش گربه ها صبح زوده شهر بزرگ تهران دیده میشه با آسمان قبارالود و ساختمان بلند کشی خانه آقای یوسف رنه داره تخت آقا یوسف رو مرتب میکنه آقا یوسف دراز کشیده داره وزنه میزنه رانا چیه بابا؟ یه دقیق بیا رانا میره کنید آقا یوسف میشه تو تواقه شده مریم سراغ بابا شو بگیره چه سر؟ میخوام بدون ازم به باباش فکر میکنه چی بگم؟ اما مرتزانش شوهر خوبی بوده نه پدر خوبی اس نهارو زمین میذاری می و می قبول نداری. کاری بابا مرتجا دخترشو ببینیم. چیزی شده؟ بیماریش اوت فرده؟ نمیدونم نگران بودش که چیزی نمی‌گه. نمی با با بابا دیروز حمید زنگ زد. چی گفت؟ میگه کاری می نمی میکنه نمیتونه موبایلشو بگیره. صورتش اسلام می‌کنه. دیگه چی گفت؟ با صورتی کفی میاد در میگه داره منم راست زن میگه تو یکی از رادیوهای فارسی زبان آشنا داره میتونه برام کار پیدا کنه. یوسف کن. نگران برمیگردی توی روشویی. رنا کتری قرمز رنگی رو میذاره روی شعله روشن و آبی اجاق گاز. رنا داره رو تخت گوش، پیاز و فلفل و سیر و گوجه فرنگی و هویج خوب میکنه اونا رو تو قابلمه. حالا تیکایی مرغ رو میریزه کمی ادویه هم میریزه در قابلمه رو می‌بنده. رحنا از پشت پنجره پرده رو کنار میزنه و توی کوچه رو نگاه میکنه آقا یوسف سه نون سنگر گرفته بفرمی در همسایه دست خانومی که پر از الانگوه از لای در یکی از نونا رو میگیره رانا یواشکی با لبخند به پدرش نگاه میکنه آقا یوسف رسید خونه درو باز میکنه بابا اگه باز میخوایی منتظر من بمونی و شام نخورده بخوابی از الان بگو غذا نپذار من بدون دخترم غذا از گلو پایین نمیره یکی از نونا رو جدا میکنه و میذاره تو همون کیف سیاه چرمی زیبا کیف رو صدای سوتی کتری بلند آقای یوسف داری چایی در میکن بله چی جوابشو دادی؟ چیو؟ همین موضوع کارم رفتن؟ تو گفتم نه میخوام اینجا بمونم دیگه راستی بابا تو دو بار سبونه میخوری یه بار اینجا با من یه بارم با امون مرتزا سنگک خاشخاشی مگه نم؟ من سنگک خاشخاشی بخوری تو فقط به خاطر من پس آقای یوسف از دم اتاق تاگر رد میشه. نهی در بازه. میبینی که رانا داره صورتشو آرایش میکنه. خیلی تعجب میکنه. رانا اصلا متوجه پدرش نیست. آقای یوسف و رانا مشغول خوردن صبح میان. <تصفيق> چیه بابا؟ دارم میگم. با آرهش یا بی آرهش اوه. خب نتیجه یه آوش که ممایت خوش زن آرهن بود هیچ وقتم آرهش نمیگه خب <تصفيق> یک بگو دوست نداری من آرهش کنم دیگه رانو پامیشه میره در اتاقو میبنده آقای یوسف صداشو میشنوی رنا داره لباس میپوشه که بره بیرون یه سنجاقسینی قرمز به یقی میزنه در حالی <متحط> که حواسش از آقای یوسف متوجه <متحط> نشه یه کفش قرمز پاشنه بلند میذاره تو کیفش آقای یوسف در اتاق دانه رو باز مکنه و من رفت سب کنی من تا یه جای با تو میام باز که پیرندی روزیت پوشیدی الان برای پیرندو تو زدم. باشه منی فردا بجام اومدم آقای یوسف و رنا توی تاکسی سبز رنگ آقای جواری رنا یواشکی کفشای قرمز رو از توی کیف در میاره میپوشه و کفشای مشکی که قبلا پوشیده بودو و میذاره تو کیف از توی آینه میبینه که آقای جواری داره بهش نگاه میکنه چی همون؟ چه عجب سواره ماشین ما هم اینجا نگه ای به چشم سب کن بزر چهار رو رد کنم جباری نگه میداری رانا با کفش قرمز پاش بلند بیاده میشه مرسی گل سینش رو صندلی ماشین جا موند رانا رو میفته میره اون طرف خیاب برای کسی دست تکان میده برو دیگه چرا نمیری؟ راه فرمان خوب به سرواز خودش میرسه هرچی در میاری خرج قروفر خودش میکنه نه بابا طفلی بابت این چی پولی از من نمیگیره از درامد خودش خرج میکنه قهوه خونه قهوه چی داری چهار دو گوشخاب پچوله نیم و املت درست میکنی؟ سبا کنی یه چیزی نشونت ودم پدر سر دختره میذاره لبه بخچه گوش تا گوش میبره خب حتما یه دلیلی داشته خاکتون سرت کنه کدوم دلی پدر و مادر بکنه که سر دخترش رو ببره حتما یه چیزی بوده دیگه برو برو به کاره شش تا مریض این حماتون آقای یوسف و جباری و صاحب قهوخونه دور یه میست باشه کی آقای یوسف و همون سفت پریزنتی مخصوص کار از پله‌های بالا میره و دم در یه ساختمون اعیانی میسته و زنی زنه. آقای یوسف در رو باز میکنه و میره تو. یه خانمه چاق و کوپل در آپارتمان رو باز میکنه. سلام. سلام. قد کشیدی. حالا حالا مونده به تو برسن. آقای یوسف لباس کار پوشید. دویه آشپزونه در یه کابینت رو باز میکنه. یه ساعت بیرون بریم. تو میخوری؟ خوردم. چی میشی گریفن به خاطر من بخوری؟ آخه یه بارم به خاطر رفیقم خوردم. حالا یه بارم به خاطر یه رفیق دیگر بخور. اینو. یا اوکی چیپس نیس. این کورن فلکسه. اینا کنی تو شیر بخوری شیر. این نوتلوس، دست زنگ یه دیگه میخوره. اصله. اصله اصله بخور. <تصفح> وقتی گربه نیست موشا میرخسن تو رو خدا نگاه کن این دکتر دست از مهمونبازی بر نمیداره تا کلی سهر بیداره بعدم یه راست میره تا اتاق عمل خدا به داده داره مریضاش برسه صدای گنگدونگشونم نمیذاره خواب به چش آدم ای وای یادم برد برد کیک بیارم تازه که بریدم گوشتم توی احجان. تو بالا کار نداری؟ آقا یوسف داره وسایل نظافت رو از تو کابینت در میاره میخوای اینجا بمونی موندم به تو کمک کنم دیگه برم بالا دیگه بر نمیگردم آه. خب بر نگرد من که و لیلی به لالوتی لطفا لطفاً پس از چنیدن صدای دو پیغام بگذارید الو ترگل یادت نره با یوسف صفونه بدید این خواهر دکتر تو رو کرده حسودیت میشه؟ نخیل دیرم میسوزه سی ساله توی خونه جون کندم یک بار از هم نپرسیده گشنه ای سیری چیزی میخوای نمیخور آخه تو خونه زد اینجایی ای؟ برو با با دستش به لیوانی که روی لبه کابینت بباربا. کنار سینکه میخوره و لیوان به زمین میفتی میدونم آخرش مندازه این گردن من خب تقصیل تو دیگه تو شروع کردی اه. توی یکی از اتاقات ترگل داره از توی ساک برزنتی آقا یوسف اه. زبط کوچیکی کچیکی بیرون میره و میذاره لبه کنسول کجا میری؟ به زبط من چی کار بری؟ درابش نکنیم؟ دو. آقای یوسف جارو برقی به دست وارد اتاق میشه لطفاً پس از چنیدن اصطلاعی دو پیغام بگذارید الو مهران؟ دوت دعوت کنی نه اگه فهمیدی من کیم یه زنگی به من بزن بی معرفت خواهد صد سال سیاره نفهمه تو کشی آقا یوسف بیا باشه بعد. من نمیفهمم این چه زندگیه این دکتر داره ها؟ خودش اینجا تک و تنها زن بچهش اون سر دنیا ترش خوش کرده به یه مش قابل آقا یوسف داره جارو می شنیدم از زنش داره جدا میشه ای کاش این دکتر یک بارم که شده با از ته دلش عاشق میشه برای نه کسی که به هر قضا یه تک بزنه خب اشتاهاش بودشه آقای میسخ در شیشای اتاق پاک میکنه الو و ورپریده چرا جواب نمیدی؟ نهار آقای یوسف یاده دره ها ببین کمون کس نداشته باشه دوباره زن میزنم ولی که این یکی از تای پاک عاشق تو شده <تصفيق> آقا یوسف دستمون رو خی آب سطح میچه آقای یوسف مشمول دستمون کشیدن به کف سال سطح نارنجی رنگم کنار شد لطفاً پس از چندیدن استدایی بو پیغام بگذارید الو میهان جون سلام نتونستم بیمارستانو بگیرم. یه خبر خوب. جواب مهاجرت کانادا اومد. هنوز باورم نمیشه. دارم از خوشحالی پر درمیارم. میارم. حالا دیگه مطمئنم میتونم باد بیام کانادا. قرار فردا برم کنسولگری ویزامو بگیرم. اینقدر خوشحالم که دلم میخواد همین امروز برم به این کار گردانه بگم دیگه نمیخوام بیام تونس و کار کنم. مهران وای خیلی خوشحالم. بازم بهت زنگ میزنم خدافظ. آقای یوسف با تعجب به صدا و تلفنی توی سالن توجه میکنه. صورت آقای یوسف سفید میشه صدای رانا بود آقای یوسف با غمی زیادی مچاله میشه رو لبه ست آقای یوسف بلند میشه دستمال خیس دستشه دستمال از دستش افتاد آرام آرام به طرف تلفن میاد خوش گذاشت که همه چی خونم جا گذاشتم هم شیشه اترم و هم گل سینم هم شال گردنم مهم نیست دار. فقط بدون که مال منه بهونه خوبیه که دوباره بیام پیشه گوشی تلفنو رو بر میداره. میخواد شماره رو که رو گوشی افتاده کفی دستش بنیمیسه با عجلی گوشی رو میذاره سر جاش کمی اون میشینه و به دیوار تکیه میده ترگل میاد تو آقا یوسف داره گریه میکنه سرش رو تو دستاش گرفته آقا یوسف آقا آقای یوسف چه کار رو تمام نکرد آقا یوسف چه شده؟ ده برات آب خنک درست کنم؟ نه. نه. می‌خوای غذا تو زودتر برات بیارم؟ نه، نه، نه. دوباره من سراغ گوشی تلفن. بله. خودشه. صدای رناست. در شماری می می‌گیریم. گوشی رو میزره سر جاش آقا یوسف با ناراحتی زیادی همینجور نشستی کنار میزی تلفن با ناراحتی از جاش بلند میشه آقا یوسف بیقراره آقای یوسف هم اینجوری سر جاش مونده لطفاً پس از چندیدن استدایی بود پیغام بگذارید. حلو آقا یوسف گوشی بردار آقا یوسف منم دکتر نفا باد کار داشتم ترگل با یه حلو. لیوان میاد تو سلم آقای یوسف برشی تلفن رو جواب نمیدی چه میدارم دکترم شب یه مش مهمون داره میخواد ببینه میتونی بیشتر بمونی؟ نمیتونم. چرا؟ جلوی غریبه کار نمی شما شما تو از آشپزخونه بیرون نزن. صد دفعه گفتم جلوی غریبه ها کار نمی کنم. بابا یه دو سه ساعت بیشتر طول نمیکشی. بمونی منم کمکه اصرار نکن نمیتونم. ترگل رفت. آقای یوسف با سرعت به طرف در اسلام میره و درو میبنده. پرده در شیشه ای رو میکشه. میره. زفت ضبط صوتو برمیداره میاد طرف میز تلفن رو روشن میکنه ضبت صوتو میذاره نزدیک تلفن اون داره صدای رهنا رو ضبت میکنه الو میخان جون سلام نتونستم بیمارستانو بگیرم یه خبر خوب جواب مهاجرت کانادا اومد هنوز باورم نمیشه دارم از خوشحالی پر میارم علتی که مطمئنم میتونم باز بیام کانادا. قرار فردا برم کنسولگری ویزامو بگیرم. آقا یوسف غمگین و در هم شکسته نشسته آقا یوسف در اتاقه رو باز میکنه یه دراور اونجا هست که یه شال قرمز از کنار آینه دراور آویزونه. یه شیشه عطر هم اونجاست. شیشه عطر رو برمی‌داره. به تصویر خودش توی آینه نگاه میکنه شیشیت رو میکوبه تو آینه خیابانهای شهر تهران مردم در حال رفته آمدم آقا یوسف با ساکش که از شونش آویزونه قمگین و بیرمق داره راه میره آقا یوسف بد تو فکری؟ انگار دنیا رو سرش خراب شده شب شده و آقای یوسف همین جوری با حال خراب داره تو خیابونه را میره حالا رسیده به یه جای خلوتی که چند تا پله هست رو پله ها میشینه موبایلش رو در میاره و یه شماره رو میگیری آقای جباری دوست آقای یوسف الو. الو الو الو آقا یوسف نمیتونه حرف نزده تو میکن. آقا یوسف بردیشت خونه در رو باز میکنه میاد تو بند ساکشو از رو دوشش بر میداره ساکو پرت میکنه یه گوشی رنگ صورتش سفیده سفیده یواش یواش میره طرف اتاق رعنا در اتاق بازه به ستون در تکه میده و به اتاق نگاه میکنه لباس ها و کفش های رعنا پخش و پلا توی اتاقن آقا یوسف زبت سوت روشن میکنه و غمگین در حال گوش دادن <کس> لطفا پیغام <تقرب> بزنی. <مساری. صصحاب> الو, <الو>, <الو>, <الو> حالا آقا یوسف همینجوری رو مبل خوابش برده اون داره کابوس میبینه صدای رنا تو سرش و صدای آب و آکواریوم بردار، خونه ای؟ بابا، من از سر شب همینطوری دارم بهت زنگ میزنم، کجایی؟ بابا، من خونه ای که از دوستامم، شب ممکنه دیر بیام حالا باز بهت زنگ میزنم، خدافز الو، جون سلام، نسونستم بیمارستانو بگیرم یه خبر خوب، جواب مواجرت خانده ها اومد، هنوز باورم نمیشه درم از خوشحالی پردر میارم با وحشت از خواب بیدار میشه. نفسش بند اومده. پچ پچ رانا رو میشنوه. نگاه میکنه از زیر در اتاق بست رانا نور دیده میشه. آره رنا اومده بیداره و یواش یواش داره حرف میزنه بالاخره صبح شد رنا از اتاقش میاد بیرون میره طرف آشپسخونه میبینه بشقاب و کاسه سالاد روی میز آشپزخونه از دیروز همینجوری دست نخورده باقی مونده میره سراغ قابلمه غذای روی اجاقگاز در قابلمه رو باز میکنه بو میکشه میبینه قصاد دست نخورده اون توه تحجب میکنه میری طرف پنجره. پردار کنار میزن آقای یوسف با دو تنون سنگک داره میره میری طرف خونه همسایه دوباره دست زن با همون الانگو ها از های در میاد بیرون یکی از اونا رو میگیره رنه لبخند نیزن بابا رانا لباس فوشیده و آماده از اتاقش میاد بیرون آقا یوسف نمی نمیبینه بابا بری طرف آشباز نون سنگک و کره و مربا و پنیر رو یه بشقاب رو میزه از پنجره به کوچه نگاه میکنه آقا یوسفو میبینه که داره میره رنا میره تو فکر آقا یوسف و جباری توی تاکسی در حالی رفتن هست یه چیزی بگو یک ندارم خوش نیست چی شده ایچی خونه دکتر گودونه قیمتی شکندم جباری ماشین رو نگه میداره پیاده میشه میره طرف تکی روزنامه فروشی یه بسته سیگال میخره آبی مسامیشه. طرف ماشین. اه. آقا یوسف تو ماشین نیست. رفته. آقا یوسف کمی دورتر پشت دیوار خودش قایم کرده کرد. یواشکی به جباری نگاه میکنه جباری سوار تاکسیش میشه و میره. آقا یوسف از پشت دیوار میاد بیرون. با عجله خودش به یه اتوبوس میرسونه. با دست به بدنی اتوبوس می کنیم در اوتوبوس باز میشه. سوار میشه. شه اینجا یه استودیوی زبط صداست شیر خانوم خیلی خوب بود انشالله خبرت می کنم بهت زنگ می زنم خیلی خوب رنا نوبت توه باده بیا جلو مریم آمده باش بریم شیرین می رنا رانا میاد پشتی میکروفان مریم داختی بای جباری داره ویولن می زنه برواقع روی سیاره شازده کوچولو مثل همه سیاره ها گیاه خوب و گیاه بد بود با حس بیشتر ببین با, با همون شورا حالی که توی حرف زدن خودت هست رانا خودت باش از نو بگیریم بریم. برو, برو, برو برو جباری رو میبینیم که توی اتاق فرمان ایستاده و با تعجب و ذوق و حسرت به اونا نگاه میکنه در واقع روی سیاره شازده کوچولو مثل همه سیاره ها گیاه خوب و گیاه بد وجود داشت در نتیجه از تخم خوب گیاه خوب می و از دااصل شگفت زده تر نشون بده متوجه ای؟ اون چیزی که صدای تو رو متمایز میکنه از صدای شیرین همین شگفت زده توه و مثل روز اولی که اومدی اینجا چهجوری بودی چه حالی بودی ؟ همونجوری باششاده کوچولوم هم همونجوری دنیا رو کشف میکنه با کنج یه کودک میگیریم. یک دو سه بریم. ما دانه گیاهان در خلوت خاک به خواب میروند تا یک وقت حوث بیدار شدن به سر یکیشان بزند آن وقت است که سر میکشند و نخست با حجب و حیا ساقهی کوچک و لطیف و بیازار به طرف خورشید میدوانند این خوبه؟ افتضاح. نه خوبه خانم به نزدیک میشه با کار شما؟ خانم مریم و میره و تو گوش مریم یه چیزی میگه مریم میاد توی اتاق فرمان آقای جباری رو میبینه و با ناراحتی بر میگرده داخل آقای یوسف داره با جاروبرقی روی مبلی رو تمیز میکنه اون زیر لب با خودش حرف میزنه آقا یوسف داره پایه های یه میز و دستمان منو یه مردی با اینه که زر بینی ساکت و بی حرکت نزدیک به اون روی مبل نشسته توی یکی از اتاقای مرد میانسال سال رو مبل نشسته و داره روزنامه می‌خونه. خانم اتاقای بالام تمیزکاری میخواهم درشونو بازگذاشتیم؟ نه آقا یوسف درشونو بازگذاشتم یه کمی هوا بخورم تو چه میدونی؟ بچه ها همشون رفتن اتاق همه خالی هست از کجا میدون؟ شاید یه روزی همشون برگردن با نوه هامون دست جمعی سونیا نمیدونه که بچه های که ما ازنه میان میانسلاملم داره شونه میکشه به موهای همون پیرمرد ساکت و آرو آقا یوسف سطح به دستت پیشو مینا و میگه حالا مره گریه میکن مرد روزنا م رو می و میز ب. سونیا، گریه می‌کنی؟ به زبان ارمنی بزن میگه. سونیا میخوای می بری پیش بچه ها حالا اونا با آقای یوسف دور میز ناهار نشستن و دارن غذا میخورن زن قاشق غذا رو به طرف دهان پیرمرد میبره و میگه: "آقای یوسف، چرا غذا نمیخوری؟ دوست نداری؟ می‌خورم. می‌خوای می نیم رو برات بیاره؟ نه. معلوم نیست ما که پیش شدیم که غذا دهنمون میذاره بچه هم مثل بچه های ها ما چار گوشه دنیا پرشن من غذا دهنت میذارم <تصفيق> <تصفيق> دختری چیز دیگه است آقای یوسف. یادتی میگفتی فقط دختری که برای آدم میمونه اشتباه کردم آقا یوسف غمگین از سر میز میشه میره بیرون سطح از رو پله ها زن به زبان ارمنی میگه اشتباه کردم امروز آقا یوسف اصلا مثل خودش نیست هیچوقت اینجوری ندیده این بودمش. ایر آقای یوسف توی انباری خونه سابکارش نشسته و داره سیگار میکشه مریم و رعنا و شیرین و چند دختر دیگه از ساختمانی که استودیو توشه میان بیرون جباره توی تاکسیش منتظر نشسته و اونا رو نگاه بده رنا با دست به آقای جوالی اشاره میکنی مریم حرکت میکنه میره طرف تاکسی شیرین سر مریم به راه میافته شیرین متوجه ماجرا شده کمی جلوتر از تاکسی یه پراید نگه می‌داره. مادر مریم مریم با حسرت به پدرش نگاه میکنه و سوار ماشین مادرش میشه در می میبنده جباری با نارا سرش رو میذاره رو فرمان ماشین سلام سلام شیرین میاد در تاکسی رو باز میکنه و میشینه و سندگره اقل آقای یسف خونه صددا راناس که از بط صود پخش میشی و آقای س خیلی دلم میخواهد ولی زیاد وقت ندارم من باید دوستانی پیدا کنم و خیلی چیزها هست که باید بشناسم. روباه گفت هیچ چیزی را تا اهلی نکنن نمیتوان شناخت شناخت آدمها دیگر وقت شناختن هیچ چیز را ندارند. آنها چیزهای ساخته و پرداخته از دکان میخرند اما چون کاسبی نیست که دوست بفروشد آدمها به دوست ماندند تا اگر دوست میخواهی مرا اهلی کن شازده کچولو پرسید برای این کار چه باید کرد؟ روباه در جواب گفت باید سبور بود زب خاموش میکنه شب شده رانو برگشته خونه در رو باز میکنه ببینه آقا یوسف روی کاناپه دراز کشیده و خوابیده میره طرفش یه کیسه پلاستیکی دستشه میشینه نبی کاناپه. ملافه روی آقای یوسف رو کمی کنار میکشه دست آقای یوسف رو میبینیم که از سوختگی اون روز هنوز ملتحه با قرمزه. رنا عباشو رو روشن میکنه از توی کیسه یه پماد بیرون میاری آقای یوسف خوابه رنا کمی از پومات رو میمانه رو دست آقای یوسف سلام آقای یوسف بیدار میشه خواجی رو خاموش میکنه. روشو از رنو رو برمیگردونه به طرف دیوار رنو تعجب میکنه قمگین و عصبانی بلند میشه جبه کاغذی پوماد و مچاله میکنه و میره طرف اتاق حالا صبح شده آقا یوسف بلند شده و نشسته لبیه کاناپه رنو از اتاقش میاد بی. میری طرف اجاب کن خاموشه از پنجره به کوچه نگاه میکنه پدرشو میبینه که با یه دونه نون سنگک داری میری طرف خونه همسایه نونو میده همسایه و بر به طرف خیابان میره رانا متعجب از پشت پنجره میاد این طرف و میره میشینه رو صندلی کنار میز خادی صبحانه اینجا محل کار امروز آقای یوسفه یه خونه قدیمی با گلدونا و شمدانی و گلاب که رو لبه یه تاقچه قدیمیه توی این خونه یه پسر جوون دستکش به دست داره پشت یه مرد مسنو رو که روی تخت یه وری خابیده آروم با روغن ماساژ میده ماساژ تموم شد بندینک های پشت لباس مردم میبنده و آروم پشتشو میذاری رو تخت آقای یوسف اومده دم در اتاق و داره به اونا نگاه میکنه شروع میکنه به تمیز کردنی در اتاق پسر جوون حالا داره گله های کچولوی پنبه ای رو لابلای انگشتای مرد خابیده بر تخت میذاره سدوی زن آقا یوسف به طرف در میره زنی که اومده همون خدمتکار منظر دکتر مهرانه ترگل خانم آشو بزن بردت میخوری هستم آشو که افریت هست میذاری تو جمع کنی بعد میار آش که بکرش دوست بری باقا میارم بدی من میبر خودت بیار ای بای کاسی آش از دست ترگل خانم افتاد گفتیم میارم افتادم خودت بیار پسر جوون داره با ماشین ریشتراشی صورت پیر روی تخت و اصلاح میکنه سلام ترگل اومد توی اتاق. زنی جوون که کمی دورتر از تخت و پسر جوون روی مبل نشسته جواب سلام ترگل رو نمیده و روش رو از اون برمیگرده خانونتون اندرد دست به سیاسفی دمیزنم این حرفا بهتون ترگل می میره کنار تخت یه سندگی میذاری کن آها پس این خونه خونه پدری دکتر مهرانی داداشتون میخواد اینجا رو بکوبه میخواد شیش واحدی بسازه میگه دیگه به درد نمیخود داداشت همیشه تنهایی دست میگیره خوارتون هماش موافقه اه ترگل میشه و میره حالا اومد اینجا اینا رو بگی من براتون تون آشا بردم خوب. پسر جوون یکیسی یک کیسه سوند پر از اترار دستشه و میره طرف دستشویی که آقای یوسف پیش میرسه و میگه ولما سیروس. نه یوسف شنید شما نیست چه کاریده؟ ناخ خودم انجام میدم. اسم این پسر خوب سیروسه. انگار دیگه هیچ کس توی خونه نیست و گوکاریا رو بکنه. با من بودی؟ نه خیر. با شما نبودم. زن سیروس داره مجلله میکنه. آه یاری یا سیروس خان رو یه جور دیگه دوست داشت. حتما میدونسه یه روز نوکریشو میکنه. آدم که خدمت پدر مادرشو میکنه نوکری نیست. سیروس خان اساسا خانواده دوست. من چی؟ من جزء این خانواده به حساب نمیاد؟ شما خانوم خونه هستید. من اگه جای شما بودم به شوهرم کمک میکردم. حالا که نیستی. درمان ترکیف میکنه شما پرسیدید من گفتم. تو مثل اینکه یادت رفته اینجا چی کاره ای چیست داره جره اینجوری حرف میزنی باقا یوسف من هرچقدر دلم میخواد حرف میزنم تو برو پمادتو بمال بعد کیسه شو عوض کن. بس کن بعد سرامشو بس کن بعد صورتشو اصلاح کن بعد ملخواهش عوض کن, عوض کن. باشه میکنی مرتد کن مرتد کن من هر کی دادن گوش منگیه بابا جانم سه سال من نمیتونم اینو ول کنم کی میخواد از اینا قدرت میگه کلفت چیه گفتی کمکم میکنی کمکم نمیکنی من دیگه رفتن نازت من تو که زندگی ناز بدهش ضمانتیت میزنید زندگی زندگی من اینو زمین و هواش چی داریم زندگی بدبخت میشتم اینو زمین و من پیشم تا این بمیره زندگی منو شروع بابا بابا سیروس حالش بد میشه صرفه میکنه و ببین چه چه آقایم سیروس چکو بی؟ آقا یوسف داره کفیه اتاقو تیمی کشه سیروس ترگل از گفش مقداری بیرون, بیرون میره آقا یوسف آنیگ بود دفتر رو ازشی شکنی شد دیگه شد دیگه خربونه شو که همه تموم کردم. دست دست دیگه. نخسته. آقا یوسف اومده دم خونی عروس و نوش یکی دو پر از میگه و مواد غذایی هم دستشه. سلام علیکم حالتون خوبه؟ نه آقا یوسف نیستن رفتم پارک آقا یوسف اومده پارک و داره دنبال عروس ها نوهش میگرده از دور میبینه نوهی کوچولوش داره تاب میخوره و عروسش روی یه نیمکت نشسته و داره با یه آقای قد عینکی اینکی خوش و بش میکنه نوهی آقا یوسف آقا یوسف میبینه و میره طرفش <تصفيق> ولی <تصفيق> امروز خیلی خستم ای آه, آه ایشت بازی میام عزیزم تو برو بازی کن میو بازی نیکو جون عزیزم تو برو بازی کن با بچه ها برو نه تو بابا ایشت نهید من بازی نه میاد از دلم برو قرونت برم برو چند روز منتظرتونه خودت چی میخوای بری؟ اگه قرار برم اونجا شیشه پاک کنم زمین بشورم نه خیلی به خاطر هدفشون از این کارم می‌کنن این چی بود؟ ببین؟ ناصر رو نشناختی؟ بله <تصفيق> چقدر تیفش عوض شده، اصلاً نشناختم تازه می‌خواستم ازتون خواهش کنم که تو شرکتتون هم براش کاری پیدا کنی برش آقا یوسف نوش رو گذاشتی رو دوشش و همراه با عروسش که های پلاستیکی دستش دارن از پارک میرن بیرون یه دفعه حالا آقا یوسف بد میشه سر و دستش رو تکیه میده به درخت چیزشو؟ نه نه. عروض آقای یوسف کیسار رو میذاره زمین بچه رو از رو دوش آقای یوسف میاره پایین شب شده یه پراید میاد دم در یه خونه توقف میکنه مریم دختر آقای جباریه که از پراید پیاده میشه یه کمی دورتر جباری توی تاکسی سبز رنگش نشسته نداره به مریم نگاه میکنه مریم پدرش رو میبینه به اون خیره میشه بعد از یه مکس مریم به طرف در ساختمون میره رانو دختر آقا یوسف داره ساقایی كرفز و خورد میکنه اون توی آشپز خونه مشغول آشپزیه از توی یخچال وسایلی بیرون میاره کرفسو رو میریزی تو روغن داغ مایتابه در شیشهٔ ادویه رو میبنده رانو از پشت پنجره داره به کوچه نگاه میکنه خلام چطوری؟ نه هم نیست نیمده میتارم برش قضا خان می آره میخوام حسابی دلشو به دست بیارم چی؟ نه با خودارم میخوام ببین اگه به انتخاب شدم حسابی خوشحال میشه آره آخه هم دستم بنده یه زدیگه حرف بزنی غذا میسوزم قربونه پا دستان. دختر و پسر جوونی از ماشین پیاده میشن. رنا منتظر نشسته رو صندلی کنار میز غذایی که دو تا بشتاب و قاشق چنگالی دست نخورده روش هست وقا یوسف در از پله ها میاد بالا در رو باز میکنه. یواشکی میاد تو خونه تاریکه کیف دستیشون رو, رو میز کنار رختای رعنا کلید برقو میزنی و اتاق روشن میشیم آقای یوسف رنا رو میبینه آقای یوسف میشینی رو کاناپه رنا میاد مقابلش میشینه تو کجایی بابا همه شب منتظرت بودم غذایی که دوست داشتی برات پختم چیه بابا چرا شبا شب دیر میای خونه حرفی نمیزنی میخوام بدونم چته بابا انقدر نگو بابا بابا بابا بدون بابا من فقط تو خونه باباتم و از اینجا فقط یک غریبه آقا یوسف با نمیشه نه دنبالش بوده نمیخوای این چی شده بابا من هیچ حرفی ندارم به تو بزنم میدونم به منم فرصت عرف زدن نمیدی اگه خوشحال باشم مهم نیست چرا خوشحالم اگه ناراحت باشم ایچ... اهمیتی نداره چرا ناراحتم فقط کافیه توی این خونه باشم همین تو چند تا زندگی داری؟ یکیش ماری توی این خونه است اونای دیگه اونای دیگه چی؟ وادارو نکن بیشتر از این حرف بزنم خب حرف بزن حرف بزن دیگه تو اصلا میتونی با من حرف بزنی؟ من برای این هست با بسته این خونه. صحب کن هنوز حرفم تموم نشده من چه دل خوشی دارم توی این خونه حق ندارم خود سلام سر بره اصلا فکر میکنی چی میتونه منو خوشحال کنه معلومه که نه چون دائم تو لاک خودتی یا سر کارتی یا پیش رفیقتی وقتی هم که میای خونه اینجا بس میشینی که من برگردم خیلی خوب الان برگشتم خونم تنگ دلتم حرف بزن از چی میترسی آقا یوسف یه سیلی میزنه تو صورت رانا رانا با وحشت و تعجب به پدرش نگاه میک صبح شده آقای یوسف ظرف پنیر رو میزه رو میزه سبونه که نون و مربا و بشقابا روی اونه آروم میره طرف اتاق رنا. صدای داستان شازد کوچولو از تو اتاقش میاد آروم میشینه پشت در اتاق مریم دختر آقای جباری با رنا توی یک کافی شاپ نشستن ورودی کافیش ها باز میشه. مادر مریم کنار اونا میشه. اون دوروا میسه. فقط نگاه میکنه. میدونم بابا می... ولی انگاری غریبه است. خیلی مریضه. کی کیبت کو؟ ماما نه مال خیلی سال پیشه. کنسرت هم دعوتش کنم میاد؟ آره حتما؟ اه مامان سم اومد سلام سلام مو بین مریم و رانو از پشت شیشی کافی می میبینن که یه ماشین قرلس اومد و توقف کرد سدرد نشه بریز نبا چی با هم پشت پشت بکنی؟ ای بابا هیچی هیچی خاله من برد برم من که هنوز تو رو ندیدم سه نفری به بیرون و ماشین خیره شده نکنه این ماشین منتظر تو شاید بالاخره افتادی تو تله جدیه بر من که خیلی برای اون طرف چطور بیگو دیگه برای اون طرفم بعد. حالا میفهمم چرا انقدر عجله داشتی بری باشه برو میذاره می میره نه ترسی نیکم منتظر بمونه برد میست خیلی به خودت مطمئنی باشه اگر افجای این ماشین پارک کرد یعنی میخواد منتظرت بمونه بله رفت جایی اون یکی ماشین پارک کرد یه دختره که گل فروش به ماشین قرمز نزدیک میشه اگه از این دختر گل فروشه یه شاخ گل خرید یعنی خود خودشه بله راننده ماشین قرمز دست گل دخترک رو ازش خرید رانا بلند شده داره بارانیش رو می پوچه که بره رانا ستایی می بینن که شیرین سوار ماشین قرمز شد شیرین اینجا چیکار کار می دوباره می دور رو سنده این خانم همون نیست که تو ستویه با شما کار میکنه. رانا با نگرانی داره به مرد و شیرین نگاه میکنه آره رقیب کاری رعناست مدینه نمیگی دوستت داره پس چرا نگرانی نه شیرین از ماشین پیاده شد و رفت خوشحالم که جدید زندگیت نگاه می‌کنی، نکنی زندگیت میشه مثل زندگی من زندگی بچهت میشه مثل زندگی من اون چش شده؟ زده به سرش؟ از خودم بپرس. من بابا رو بینم. اون گناه داره تنهاست بناشو بریم خونه اونجا حرفامون رو بیزنیم ببخشید رناجون بلان شدن اومدم بیرون توی خیابون جباری توی تاکسی سبز رنگ اون بیرون منتظر نشسته جباری میبینه که رعنا به طرف ماشین قرمز رنگ رفت و سوار شد ماشین حرکت میکنه آقا یوسف توی محل کار امروزش داره رو توی زرشوی آشپسخونه میشوره دو تا دختر جوون نشستن کنار میز آشپسونه و دارن حرف میزنن یه پسر جوونم کمی دورتر از اونا روی مبلی توی پذیرایی لهم داده بر دو تا بچه پس انداخته هر دوتاشونم تحتیل اونی که تحتیله مخته تو چی میگه انتا؟ بابا علی رضا که اینه بابا من کجا مینه بابامه؟ بابام که از میمونم زشتره اون گوریلم رد کرده رفته سی آ یوسف ناراحت شدی؟ بله ناراحت شدم. بی خیال بابا. تو ظرفتو بش. علیرضا مچه دست آقای یوسف, و میگیره. آقا یوسف رو میگیره. آقای یوسف علیرضا رو محکم از روش هل میده و میچسون بی تیگ. اون دستش رو میگیره که دستش پرت میکنه طرف آقای یوسف. میخوره به یه عکسو مشکی. تو فکر میکنی چی هستی؟ علیرضا نظافتی ام. تو چی؟ جاوری چو نمیشه با من درست صحبتو میزنم ناقصت میکنم آ. تو غلط میکنی مادر خونوهاداست که اومده دیبا. من میخوام بدونم آقا یوسف تو این خونه چیکاره است که اینقدر ازش دفاع میکنی اون یه غریبه است حق نداره تو زندگیمون دخالت کنه احمق آقا یوسف یه کارمند بازنشسته است یه مرد محترم و رو داره اون فقط اینجا یه چیه همین نظافتچی نظافتچی من گناه کرده که نظافتچیه همین آقای یوسف نظافتی برو ببین چه دختری در کرده رنگ از صورت آقای یوسف میپره شب شده آقای یوسف برکشته خونه ساکش رو همونجا دمه در میندازه. میبینه میز صبحانه ای رو که برای رعنا چیده بود همونطور دست نخورده است میره در اتاق رنا رو باز میکنه کلید لامپ میزنه در کمود لباس های ها بازی و از اون همه لباس های رنگارنگ رنگ خبری نیست آقا یوسف غمگین همونجا میشینه آقا یوسف با همون لباس ها رو لبه کناپه سرش رو تکیه داده به صندلی و خوابیده تو خواب صدای رنا رو میشنمه بیدار میشه ولی رنا نیومده آبا. صبح شده آقا یوسف اومده دم در خونه دکتر مهران دستشو میبره طرف زنگ در اما پشیمون میشه و همونجا میشینه رو پله ها و میره تو فر. حالا آقا یوسف اومده یه خونه دیگه و داره اونجا رو نظافت میکنه یه پتور رو از رو تراس میتکنه داره جا رو برقی میکشه آقا یوسف داره با روزنامه شیشه رو پاک میکنه. اومده سراغ کتاب کنه. چند تا کتاب افتاد. مرد سفخونه سینه چای به دست میاد تو. باز که تو رفتی سراغ اون کتاب ها؟ جور کردن این کتاب کار خودمه. لازم نیست که تو کار بکنی. کنی. تو کنم؟ یه مگه قرار نبود بقیه حرفاتو بزنی چی بگم شما دخترم به من کلک میزنه برن که با اون که هر ذو برکانه دار هر خفتی تن میده خیلی خب تو از اون مرد چی میدونی شما که خبر نداری دست کم ده تا زن دختر تو تلفنش بیغام میزنه تو حق نداری گوش بدی اسکانت بیار بین این اون مرد رو محکم نکن افتوقان اینجور مردا کافیه که یه زن مناسب براشون پیدا بشه و اون عاشق خودش بکنه این زن چرا باید دختر من باشه چرا نباشه دختر من همسنگ اون نیست دختر یه کارگر نظافتچی تو این تصور بهش ندادی خودت کشتی که پروبال بهش بدی اما حالا که بخوای پرواز کنه جلو پروازشو رو به اندازه پروازی گنجش نه آقا پس چرا پسرت فرستادی کانادا من اون نفرستادم خودش یه جور به همه کلک زن زن و ب چش غال گذاشت رفت حالا نوبت خواهرش بازم شروع کرد دور برای خودمونا کلی جوون درس خونده خاصگارشن من می تو به هر قیمتی که شده میقای دختر تو برای دلت نگهداری مگه نه همینه که دخترت تو می از من میترسه میدونم <تصفح> که عاشق دخترتی دخترتم از این اشق زیادیه که می تسه نه تسه حرفاش بهت میزنه اقا جاپری با تاکسی سبز رنگش میاد. نگه میداره پیاده میشه میاد طرف آقای موسیق میشین که چرا جلی خونه قرار نزاشتی چرا اینجا حتما مهمه نکن راجع به رهنا حالا می‌بینی که تنهایی این تایخی یا تلخه خاش نه به چی؟ میخواستم بهت بگم 10 سال بابت زن و بچم هم به هم سرکوف بیزنی مزخرم میکنی چیه؟ الان خسرتشو میخواهی؟ نه خره بخوام بگم خیالاتی شدی آقا یوسف از تو ساکش شال قلمه فر شیشه اچو بیرون میدونی نماره کیه؟ مدر نماره میدونی کجا فید کردم دکتر دستگاه زبت سوچا هم بیرون ولی مرد که ایاش فیقا ما عاشقانه گذاشتی وقت تو میگه یادتی شدم حاضرم جونمو بدم تیک که پارم کنن اما به ثابت بشه صدای دکترم نیست دخترم قصد نداره با مرد که زن باره به کانادا دخترم از دست شدم همه این را ترس ترس چی؟ در ترس در تنها شدم یه هوی اومده سرابت چند بار گفتم بهش فکر کن میدونم گفتم میدم کار میشم میون خوانواده های مافی، مینا ها، سلامت نه تنهایی روفراموش کنیم. تا بتونم زندگی هر روز نب و که اون به غیرت بالشون گشته رفت تمرینکن خوشبال تو که با این خوانواده ها تنهایی تو پر میکن. من حتی قیافه یکی از ساافام رو یادم نمی. چقدر سرماشتاممون شبیه همه جوبر با همه استخدام شدیم عروسی کردیم بچهدار شدیم. بعضش هم بازنشستم واقعا تو عاشق زنت بودی من دشمن زنم <تصفيق> عجیبه پین سال زنم زیر خاکه هنوز برای من زنده هست زنتو نفس میکشه برای تو مرده دختر منو برکر رفت باننش دختر تو هم دختر من چی دختر تو دخترون چی؟ دخترون چی بیمارو چی بیمارو؟ چی بیمارو چی بیمارو؟ بابا چی بیمارو کسیفه؟ ای بابا منم جبر؟ کتک کاریشون تموم میشه چرا قضیه رو به خود را هنها نمیگی؟ یوزف خواه باره تو بزی زمین اون وقت دست خودم رو میشه به این میگه تو نوکری خونه های مردم از من پنهوم کردی منم به ارتماد من با سابقی از اون خونه میخواد حال دکتر جا بیارم به نمیدونم اگه قرارششه که با دختتر حرف میزنهلتتو پا میدونی کارت به کجا می کشه؟ هم خاطر شررح ها آموش رو هم خاطر دکرم تو میری با دکتر حرف مینی؟ اصلا حرفشم نظر اینجا بیمارستانی آقا یوسف و جواری اومدن اینجا. جباری به اطلاعات نزدیک میشه سلام خانم سلام آقای دکتر نوابو کجا میشه دید؟ آسانسور طبقی دو. آقا یوسف و جباری از آسانسور میان بیرون اومدن دمه در اتاق عمل یه پرستار به جباری نزدیک میشه با کی کار دارید با دکتر نواب چی کارشون داریم؟ بهشون بگیم بیان خودشون میفهمن تو اتاق عمل هستنشون یعنی از اتاق عمل بیرون کار داریم باید اینجا اصلا بابا اینجا پرستار میره آقا یوسف به جباری نزدیک میشه دست اونو میگیره و میرن مریم قمگین داره سل میزنه جباری تو خونش تنها داره سیگار میکشه و روزنامه میخونه آقا یوسف تنها به سختی در از پله های توی خیابون بالا میره آقا یوسف رسیده تو کوچه به پنجری خانه زل زده رانو تو خونه نیست خونه تاریکه جباری در حال رانندگی تو خیابونای شهره. اون شدیدن رفته تو فیر آقا یوسف اومده تو قهوه خونه کیف چرمی اداری رو میده به شاگرد قهوه چی. و ساکه برزنتی کارشو ازش میگیره و میره آقا یوسف و کیسای پلاستیک میوه و خوراکی داره میره طرف خونه عروسش مریم مشغول نواختن ویالانسله آقا یوسف تو خونه نشسته و داره سیگار میکشه رانو و مریم هن که دم در خونه همسایه تو کوچه خونه آقای یوسف تو ماشین نشستن چی روش بگم؟ بگم او من برای بابام خواستگاری هرچی بگی خوشحالش میکنه اصلا میخوایی منم باید بیام بریم از ماشین پیاده میشن ماشین حرکت میکنه و میره آقای یوسف از پشت پنجره مریم و رعنا رو میبینه یه جبه شیرینی دست رعناست حتما برای خواستگاری از انه همسایی. این همیشه بازه. با مریم میرن طرف داخل ساختمان کمی پرده‌ی آویزونو کنار می‌زنه. میبینن زن عالمگو پدر رو میچر نشسته و آروم میره طرف پسر جوونی که رو طاقبنده روی افت نشسته. زن به پسر غذا میده. مریم و رنا بوخت زده به این منظر خیره شدن رنا یواش جعبی شیرینی رو میذاره زمین و میرن آقا یوسف توی میلی میلیبوس نشست بفرمی خودم است کجا؟ بله کسی شده آقا یوسف اومده کلان تری سلام سرطان سلام منو خواستن اینجا نمیدونم برای چی خواستم اسمتون من یوسف رو نسکنم بشترانی همین پوش بشترانی تحقیق تحقیق اسمت احمد احمدجم شدرو نوجومت تحتید تحت این پشت کنیم پشت کنیم پشتی دفتایتا دو تون مزمون درزی یکم داری یکیشون بازداشت شده و یکی هم داریم سمید بله هر دوشون با پیسان او به برخور داشتن چشت رام سرم شما یوسفی مسکونی؟ بله بالایم به اگه بازدیم مشخصاتون برمسید چند بله بله بله بله بله. سنه خونه کار میکنیم سه سال سه سال خورده این. پس واسه خیلی از ادمورا بشناسیم. بله. من خود دکترم نمیبینم. چطور دیگه؟ من وقتی هم شروع میکنم دکتر زودتر رفته بیمارستان. ببخشید جناب سرباز. کسی جواب منو نمیده. من واسه چی اومدم اینجا؟ آقا یوسف با دیرقه به صدا توجه میکنید. ببخشید چه اتفاقی برای و با با به طرف صدا برمیگردد. از دوستان خانوادگی‌شام. خیلی وقتا نیست که می‌شناسنش. بفهمی توی راه رو صداتون. فقط میخواستم بدونید این قضیه هیچ ربطی به من نداره. دکتر دوستو فامیل زیاد داره. اونا بیشتر خوابنگتون میکنن تا من. خانم بمونه توی راه رو خبرتون می‌کنه. صدایی شیرینه. همون دوست مریم و رعنا که با رنا رقابت داره. آقای یوسف کمی خوشحال میشه چرا که مطمئن بود الان رعنا رو اونجا میبینه آقای یوسف از اتاق با اومد بیرون تو راهرو شیرین رو میبینه که اونجا روی مونکت نشسته آقای یوسف میره طرفش آقای یوسف بیرون دم در کلانتری منتظر ایستاده. شیرین در از کلانتری میاد بیرون آقای یوسف میره طرفش پشت سر شیرین حرکت میکنه آقای یوسف سنجاق سینه و شال قرمز و از ساکش میاره بید ببخشید خانم میتونم یه چیزی ازتون بپرسم؟ من شما رو نلیش نسم. میدونم فقط یه سوال داشتم چی میخواییم بپرسم؟ این عمال شما نیست؟ اینا چی نخیر آقا مال من نیست مطمئنی گفتم که آقا مال من نیست آقا یوسف میره شیرین از پشت اون نگاه میکنه شیرین به آقا یوسف نزدیک میشه شما پولیسی؟ پلیس؟ <تصفح> نه من از آشناهای دکترم چرا میخواییم بدون اونا مال کیه؟ خب فکر کردم با اتفاق که برای دکتر پیش اومده ممکنه برای صاحب اینا دردی سر رو درست بشه همین خب اونا مال منم شال و گل سینه رو از ساک بیدون مال شما امه. مطمئن چیه نوبت شماست که شک نه نه نه من من برای چی شک کنم فقط به من بگین که همین گل سینه با این روسری بود نه یه شیشای اترم بود اه شیشه اترم بیرون. اینه اه چه خوب شد چی خوب شد ایچه خوب شد همه چی خوب شد همه خوب شد همه چی همه چی همه چی خیلی خوب شد راستی صدای شما چقدر شبیه صدای دختر منه <تصفيق> آقا یوسف با خوشحالی میره شیرین شال و گل سیمه و شیشه ات رو مندازه سطح آشخال <تصفيق> آقا یوسف روی تاپ نشسته و داره با خوشحالی با نوش تاپ بازی میکنه آقا یوسف با جعبه شیرنی و میوه اومده خونه و با خوشحالی میره طرف تلفون سلام لطا پیغام بذاری رانه جان کجای عزیزم خیلی درم برای تنگ شد بیا خونه بیا بیا و من متظردم. میدم میونه داره به صدای ضبط شده گوش میکنه. کاست رو از بط س بیرون میاره. یه چاقو میندازه به نوار کاست و اونو از کاست میکشه بیرون و کاست رو پرت میکنه. شب شده اینجا خونه‌ی آقای یوسفه آقای یوسف و عروسش و نوش دور میز نشستن رنا خانم داره از اونا پذیرایی میکنه بهبر به، رنا خانم چه کرده؟ آلو می‌خواد؟ آره عزیزم بریست. میخوریم بعد حسابی تعریف میکنی جای بقیه خالی. منظورم امیده. بابا یوسف بیشتر به فکر هم تا پسرش. <تصفح> چون نمی‌خوری نیکو؟ من نگفتم آشپز حمید رو دوست داری خب بخور دیگه. بکنم سالت بگم سالت بهت میدم چی بابا دوست نداریم چرا؟, چرا چرا داشتم فکر میکردم تو مجبور نیستی ولی من آشپدی کنی یعنی چی میخوام بگم من بلد خودم اداره کنم شما امشب یه چیزتون میشه ها؟ این حرفو چی میزنی خب من حرفا رو پیشتر از اینه باید میزدم کدوم حرفا که تو بعد به فکر خودت باش. هستم شاید بخوایی کنی بری کانادا. شوهر کردن و کانادا رفتن چه ربتی به هم داره تو خدا این رو به هم رب ندین من که حالا فهم بخارم نه بابا میخواد منو از سر خودش باز کنم <تصفح> بابا تا حالا از این حرفا نمیزد حالا چی شده یه منطبه حالا شما تو بخور از سفر که برگشتم با فصل حرف میزن کدوم <تصفح> سفر نگفته بودی حالا کجا میخوای بری؟ هیچی بابا همین دور و برا آقا یوسف میری تو فکر حالا صبح شده آقا یوسف داره بند کفششو میبنده آقا یوسف داره تلفنی صحبت میکنه بفرمید سلام آقا مسعود. سلام من صاحبونه آقا جبباریم خواستم ببینم شما ازشون خبر دارین چطور امگی؟ آخه تاکسیش اینجا از خودشم هیچ خبری نیست راستش من میترسم حالش بد شده باشه اگه میشه یه سری به ما بزنی سلام سلام آقا مسکو خوب شد که آمدین حوالی لستشیف بیارین ببین آقا مسکو تاکسیش چند روز افتاده اونجا از شما خبر میمارید ممنون آگه تو خدا فکر ببخشید آقا مسکوب این نامر هم یه دختر خانم جوانی آورد داد به من واسه آقا گفت تو تا بی لیب توشه فکر کن رو باز میکنه دست شما نرم خواهش میکن اینجا کناتریه بازپورس و آقای یوسف دارم به این صدا که از بت صود پخش میشه گوش میکن. هر روز یکی از انگشتای دستتو دست میشماری هنوز همش رو تموم نکردی حساب تو رسیدم نمیذارم دستت به دختر مردم برسه خته؟ شاخ نه. نه مطمئن من تو تشخیق صدا از پشت تلفن مشکل دارم. اونو به میزی که پشت سر آقا یوسف اشاره میکنه آقا یوسف برمیگرده جبباری رو میبینه که نشسته رو سنده ده. همسه یاونو با تاکسی چند بار دور بار خونای دکتر دیدن حرفی برای گفتن نداری. دم در زندان آقا یوسف از ماشین پیاده میشه از دری میره تو. جبباری از توی راه روی زندان به طرف سالون ملاقات میاد. تلفنی با هم صحبت میکنم. کوی؟ تو اون توی حال من میپوشی؟ جگار کنم که تو خوب باشی. چرا این کار کردی؟ کدوم کا؟ عذیت میکنی؟ میدونی چند سال بعد تو باشی؟ من اصلا تو هم. شو خید گرفته. نه جدی میگم؟ زدی یه رو ناکار کردی نمیدهی چرا اون توی؟ من فقط دو تا پیغام تلفونی واسهش گذاشتم میخواستم بترسونمش <تصفح> باورده میکردی؟ نه بچه خونه آوال اصول میدونم این تو هم همه سلام بسنم رهنا چی؟ میدونم اینجا؟ نه رهنا نمیدونم دختر اون میدونم هفته پیش اولین شب کنسرتش بودم تو از کجا فهمیدی؟ پسترشو تو اتاق دیدم تو تا من چقدر بکردی؟ دو تو بیدید ایکی برای من ایکیوان تو بذاشتیم چطور بود؟ خیلی حواسم به کنسرت نبود همش مهمه تماشای دختر ازده یاد اون روزی بودم که بیلونش رو زدیلا به اتاقچه چکندی و دسمت گرفتی به باد کتکچه چرا دخترم رو به بیراه میکشونی نه میدونم شاید هم تو اون کار گذاشتم یه دفعه چشمای جباری از تعجب گرد میشه آقای یوسف گوشی رو میبره طرف دست یه خانم که چادر سرشه بله مریمه که اومده ملاقات پدرش آقای یوسف میره مریم و آقای جباری به هم خیره شدن جباری از خوشحالی صورتش پر از خنده شده هرگل خانم با سینی چای میاد طرف آقای یوسف که مشغول نظافت و گرد گیری. آقای یوسف یه چایی چه خبر؟ یارور گرفته. کیو همون که دکتر چاقو زده بود کی هست یکی نیست که چند تان دو تا سه دو سه تا. دوتا شروع گرفتن، یکیشون هنوز اینوز نگرفتن. میگن طرف خیلی هم ناشی بوده. با خور دیگه خوبه. دکتر که حالش خوبه. سر و نه گنده. این خود چون میرسن با این زربه نمیشه که. برنم تو ویلای شمالش داره استراحت میکنه. گفتی طرف ناشی بوده؟ چون نتونیسه زربه شو اون جایی که باید بزنه. میگن انقدر ضربش ضعیف بوده که ممکنه کاری زن باشه زن؟ اوه. حالا میفهمم چرا دیگه خبری از تلفن این زن من نیست. چه خوب شد یادم افتاد راستی آقای یوسف یکی قرار بیاد لباس و وسایل دکتر رو بردار ببره شما یعنی من بمونم در براش باز کنم؟ نه کلید داره فقط گفتم اگه یه در واکد تو هول نکنی آقا یوسف استکان رو میذاره تو و میره سراغ کارش آقا یوسف داره همام و وان و تمیز میکنه آقا یوسف کارش تموم شده و داره لباس میپوشه که بره متوجه صدای کفش زنانه میشه میره طرف صدا از فاصله دور خانمی رو میبینه که توی آشپزخونه آقای دکتره صدای زنگ موبایل خانم است آقای یوسف رانا را از دور میبین رانا پشت به آقای یوسف بره با دکتر مهران صحبت میکنه تو خونه؟ خونه تو هنوز که خونه من نیست چون هنوز باورم نشده آقای یوسف از دیدن رانا حسابی غذب شد مهران چی نگهی بیا شمال بیا شمال اه؟ من که تنها نمیتونم بیام نه بابا مگه اگه میتونم این راحتی با بابام حرف بزنم نه البته میدونی خودش دیشب شب یه ویه گفت خیلی چیزها مثلا اینکه چرا به فکر خودت نیستی چرا شوهر نمی <تصفح> از این حرفا نه خیلی خب ببین حله چیه بعد من این شب حسایی باش حرف بزنم اون وقت اگه همه چی رو براه بود باشه میام <تصفح> دستم با خودش خودش میام <تصفح> مهران میگم خدا رو شکه هیچ چید نشد بایه هموز باورم نمیشه وقتی بهش فکر میکنم وحشت میکنم <تصفيق> ای مهران یه چیز جالب الان که دا بابام حرف میزنیم یکی تو کوچه داره رد میشه شبیه بابامه باور کن دیگه کن عین خودشه هیکلش لباس پوشیدنش <تصفيق> فقط کیفش فرق داره جالب نیست نه بابا اون الان سر کارشه تو کوچه تو چی کار میکنه رانا با بود از پنجره همچنان به رفتن آقای یوسف نگاه؟ عزیزان این برنامه با صدا برداری آقای علی حاجی نوروزی، تهیه کنندگی آقای فرشاد آذرنیا، تنظیم و اجرای من شمسی صادقی به شما خوبان تقدیم شد. تا برنامه دیگر خدا نگهدار. که بیان دادن